بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند به نهایت باره قیامت نزدیک شد و ماه شکافته شد اگر نشانه را ببینند روی برمی تابند و میگویند اینجا دویست پیاپی و پیامبر را تکذیب کردند و هوای نفس خود را پیروی نمودند و هر کار به جای خود قرار گرفته نیست بیگمان و ایشان برخی خبرها رسیده است که در آن به قدر کافی هوشدار بازدار دی بوده است این حکمت بالغه است ولی این هوشدارها بی نتیجه لذا از ایشان روی بگردان روزی فرا می رسد که دعوتگری مردم را به امر ناگواری فرا می خاند. در حالی که چشمشان به زمین دوخته شده است از قبرها می تو گویی که ایشان ملخهای پراغنده هند بسوی این دعوتگر با نگاه های خیره نگاه می کنند کافران می گویند این روز سختیست پیش از آنها قوم نوح بر ایشان, تکذیب ایشان ای را تکذیب کردند ایشان بنده ما را تکزیب کردند و گفتند او دیوانه است و او باز داشته شد در این حال با پرودیگار خود چنین نیایش کرد من مغلوب شده ام پس مرا یاری دیم پس دروازه های آسمان را به آب سرازید شونده و از زمین چشمه ها را یاری ساختیم پس آبها بر کاری که مقدر شده بود در می خد و او را بر کشتی ساخته شده از تخته چوبها میخوا و اعتنابها برداشتیم که زیر نظر ما حرکت میکرد پاداشی برای کسی که با او ناسفاسی شده بود بگمان این را مایه اغرطی گذاشتیم پس آیا فنپذیره هست؟ پس چگونه بود عذاب و اثر انجام های من؟ ما در واقع قرآن را به منظور پند گرفتن آسان ساختیم پس آیا فنپذیره هست؟ عاد نیز پیام حق را تکذیب کردند. پس چگونه بود عذاب و سرانجام هوشدارهای من بیگمان ما در روز پیاپۀ نحس تونباد سردی را بر ایشان فرستادی. مردم را می کشید. گویی که ایشان تنههای درخت خرمایی از ریشه کشیده شده ای باشد پس چگونه بود عذاب و سرانجام هوشدارهای من ما در واقع قرآن را به منظور پن گرفتن آسان ساختید پس آیا پنپذیره هست؟ سمود نیز هوشدار هندگان را تکذیب کردند و گفتند آیا بشری را از میان خود پیروی کنیم؟ اگر چنین کنیم آنگاه در گمراهی و جنون خواهیم بود آیا از میان ما تنها بر وی وحی نازل شده است؟ نخیر بلکه او بشار دروگوی و بیمبالات هست فردا زود میدانند که دروغگوی بیمبالات کیست؟ ما حتما فرستنده اشتر مادۀ هستیم به منظور آزمایش ایشان پس تو ای ساله ایشان را مراقبت کن و صبر نما و ایشان را خبر ده که آب میان ایشان تقسیم شده است هر نوبت آبی حاضر کرده شده است هر کسی که سهمی در آب دارد حاضر شود و نوبت آب خود را بگیرد پس یار خود را فرا خواندند، و او به این کار نهایت خطیر دستی یازید و شطر را پی کرد پس چیگونه بود عذاب و اثر انجام من؟ بگمان ما بر ایشان آواز شدیدی را فرستادید و ایشان چون گیاهان خشکی در هم شکسته شدند ما با واقعه قرآن را به منظور پند گرفتند آسان ساختیم پس آیا پنپذیری هست؟ قوم لوت نیز حوشدار دهندگان را تکذیب کردن بگمان ما بر ایشان باد باری را فرستادیم که همه ایشان را حلاک کرد جز خانواده لوت که سهرگاهان آنها را نجات دادیم به حیث نعمتی از جانب ما این شنین پاداش میدهیم کسی را که شکر را گذارد و واقعا لوت ایشان را از معاخزه ما هوشدار داده بود مگر ایشان با هوشدار به هندگان ستیزه جویی کردند و از او خواستار مهمانانش شدند پس ما چشمانشان را کور ساختیم پس گفتیم عذاب و هوشدارهای مرا بچشیم بیگمان در سراغاز باندادان عذاب پایدار به سرانشان آمد پس این عذاب و خوشدارها را بچشید ما به واقع قرآن را به منظور پن گرفتند آسان ساختیم پس آیا پنپذیری هست؟ و بیگمان برای فرامیان نیز هوشدار دهندگانی ده آمدند ایشان همه موجزه های ما را تکذیب کردند پس ایشان را معاخزه نمودیم معاخزه صاحب قدرت منی و توانا آیا کفار شما یعنی قریش از آنها بهترند یا برای شما در کتب پیشین امان داده شده است؟ یا می ما جماعت هستیم پیروزمند؟ به زودی این جمعیت شکست می‌خورند و رو به فرار می نهند. بلکه قیامت و حقیقیشان است است و قیامت بلیه سختر و تلختر است بیگمان گناهکاران در گمراهی و دیوانگی به سر می برند روزی که به خیش در آتش کشیده شوند به ایشان گفته شود بچشید مزه آتش را بیگمان ما هر چیز را به اندازه آفریدیم و حکم ما نیست مگر یک کلمه همچون یک چشم هم زدن و واکن در گذشته بسیاری از امثال شما را حلاک کردیم پس آیا فنپذیری هست؟ هر آنچی را که مرتکب شده اند در نامه اعمالشان درج است و هر کار کوچک و بزرگ نوشته شده است بیگمون پرهیزگاران در میان باقه ها و در کنار جویبارها می باشند در مجلس صدق نزد پادشاه توانای مطلق